أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين القاهرين المحسومين والله الدائمات على رضائه مجمعين اللهم يتمنى الحمد يا پس شد که راجع به انتفاع و خرید خوروش شدید که ادهی از روایات هست که در عباب مختلف در وسایل شده که از سن اگر بعض آیان حال داشته باشن همشه یک جو چند بکنن خیلی خوبه این مقدارش رو در اعضاء ع... حیوانات در زکات مرحومه سا وسائل باوی قرار داده باب سی از عباب سیل و زبایه به حساب این چاپ مرحوم ربانی که پیشونه هر جند شونزده صفحه یه دویست و نوید و حدیث اول رو خوندیم و از کردیم یک اشکال سندی داره همون میشه به هر حال کارش کرد که امام میفرماید خود اصلی این کار اشکال نداره کندن دیکه های از دنبه یه هیوان که بزرگ میشه اشکال بعد فرموزن این نفی کتاب علی انه ان ما خطه امنه ها میتون لایون تفاعلیم فرید فرموزن این مصل رو توی این کتاب علی هم موجوده من دیروز ارز کردم از این تفاصیل شهرگی هایی به شرم مفصلی داره یه روز درسی درسی که حالی درشت از شد که در اصطلاح روایات کتاب علی دو تاست در حقیقت اشتباه نشد یکی یک کتابی بوده که از امیر سلام الله علیه نوشتن و پیغمبر اکنم فرمودن و حضرت امیر به املاع خودشون نوشتن یه توصیفی از کتاب در عده از روایات آمده طبق بعد از روایات ظاهرا کتاب مثل همین کتاب های اروز ما بوده یعنی صفحه صفحه بوده وشم خب کتاب درشتی بود زیاد گنه بود تعبیر شده به فخوز فالج فالج همین شطورهای خراسانی رو میگم شده دو بروحان. مثل ران شطور از بعضی عبارات ها معلوم شده که نه یک کتاب بوده که پیچیده بودن نه اینکه مثل کتاب های حالا وارد ما خودسانش فیلن نمیشیم چون بحث طولانی داره. اون کتاب بعدی صلوات الله سلام علیه اون در اختیار اهل بیش بوده. در آنه در اختیار برمیات الله صلوات الله در اختیار آمه مردم نبود یه بخشش رو که بخش ترائز باشه یا اصطباقا نوادیس باشه مرحوم زراره در اول کارش بوده پیش حضرت باقر دیده که حضرت صادق بودش رو لیکن و اونجا اون جلده داری که من تمام کتاب رو تفحص کردم از اول کتاب ثقاتی کتاب فعلا ما حال نمیدونم باشه نمیدونم اما فعلا کتاب اونجیه که من خبر دارم در میان روایات ما روایتی نداری شخصی که من اون کتاب رو صفحه صفحه نگاه کردم از اول تا آخر الا همینی که زراره راهنمایی کرده و این نقل زراره در کتاب کافی در جلد 7 در باب مواریسه اول موارث کافی اونجا در مرحوم دیگران نرکن یک کتاب علی دیگه کتاب دیگری بوده که اسمش از سنن و القضای و الاحکام یا حالا با تقریم و اسم اسمه این بوده از این کتاب به عکس اون کتاب اول بین مردم مشهور بوده و مقصد در کوفه که پایگاه خلافت از تعمیر بوده و پایتخت از تعمیر بوده این کتاب در کوفه منتشر میشه و معروف میشه و شواهد هم نشون میده که بعدها زیدی ها یعنی صادات حسنی که در مقابل حضرت صادق به سامود در ای امامت بودن مثل عبدالله محض و پسرش محمد نفس زکیه اینها عمده مستر علمیشون در بخش علمی از همین کتاب بوده یعنی اینا از همین کتاب استفاده علمی میکنه در بخش فرهنگی به اصلاح امروز از همین کتاب علی به این عنوان از این استفاده می‌کنه نه از اون کتابی که در اختیار ائمه علیهم السلام می‌جاشه یعنی چند تا کتاب بوده که ائمه علیهم السلام اصرار داشته اینها رمز امامتن یکی از مصحف فاطمه زهرا اندری ها بود شرح اینها یک شرح مفسری است که دیگران جا جاش این کتاب در کوفه شهرت پیدا میکنه زیدی ها به او تمسوک می‌کردن خود از ها از اون بداران کتاب علی نام می‌بردن و بعدها اصحاب سنی‌ها بعد‌ها ها به خصوص از این کتاب نقل کردند و نسخ کتاب هم تا زمان مثل کلینی و حتی مثل شیخ صدوق هم موجود بوده لکن تقریباً می‌توانیم بگیم تقریباً با بعضی از تأملات تا حدود زمان ما باقی یه مقداری کتاب اعتبار داشته پیش امام خواندن پیش ایمام باغل سامونده هلی احتمالا این که کتاب قضایی های علیه قضایی امیر مال محمد ابن قیز یه قسمت از همین کتاب باشی که بر امام باقر خونده اما از زمان امام صدا درست هم نمیدونیم چرا کم کم کتاب میشه گفت بین شیعیان محجور میشه خود رفت بکنیم شما الان اوله یه چون حال منم مساعد نیست و وقتم مساعد نیست الا شرحی سابقه هم در درستا دادیم افکردن که یه مفسر شد خود مرحوم نجاشی هم که در اول کتاب فهرست خودش این کتاب رو اسم میبره، گاهی به ابو رافع نسبت میده که به پسرای او تقریبا گاهی هم به حارث اول همدانی یک نفر دیگر میشه نسبت و طرقی رو ذکر میکنه یعنی مثلا برای ابو یا برای حس امیر یه بعضی‌ها هم به حس امیر نسبت دادن. یه طریق دار می‌کنه. بعضی‌ها به ابوبیدالله نسبت می‌دن. یه سری چیزی که در این طور خیلی جای تعجبه این است که اولاً مثلا معظم اینا از طریق زیدی‌ها هاست مثل ابن ابده و بزرگان ما توی این سند نیستن. هم خیلی عجیبه. بیشتر اهل سنت و زیدی ها و این‌ها تو سند هستن. این نشون میده کتاب از زمان امام صادق به بعد دیگه از دور شیعه خارج میشه با این کتاب موجود بوده از کردم من همین اوائل بحث به مناسبت کتاب دائم الاسلام از صاحب دائم کتابی اخیراً چاپ شده به نام علی ایزاه. چاپ نشده اتارا علی ایزاه مال صاحب دائم الاسلام قاضی نعمان بن محمد تمیمی حضرت تمیمی به نام علی ایزاه. ایشان در اونجا از این کتاب مستقیم نقل میکنه. و ارز شد قاضی نعمان به حسب طبقه علمی ما بین کلینی و صدوغه کلینی 329 یا یک سال کمتر بیشتر رفاتشه صدوغ هم 381 این قاضی نعمان سر 61 یا 63 است الان توی لحظه تو ذهنم پس ایشان تقریبا هم طبقه مرحوم ابن قولوی 368 و 69 وفاتشه تقریبا هم طبقه اوست یعنی ما کلینی و ما بین شیخ صدوق رضان الله تعالی علیه من قاضی نعمان از این کتاب مستقیم نقل میکنه که این نشون این کتاب در اون زمان موجود بوده این زمان کلینی هم موجود بوده لیکن کلین نقل نمیتن و اون سندی رو که در کتاب قاضی نعمان آمده این اون سند تقریبا در کتاب نجاشی هم آمده این نجاشی هم با همون سند نجاشی از طریق زیدی ها نمی کنه این نشون میده که این کتاب خیلی بین اصحاب ما جا نیفتاده یا لاقل از زمان امام صادر به بعد جا نیفتاده حالا چه آثار علمی داره خود کتاب یا بحث دیگری؟ و من در همین بحث میته که الان از جز به بحث خود ماست یه حدیثی رو در مستدرک از قاضی نعمان نقل کرده بود روی همون ذوق شمال فقه خودم خود با معروف احتمال دادم این حدیث رو قاضی نعمان از کتاب همون از رایی و سنن و احکام نقل کرده باشه برای که با ادبیات اون کتاب هم آشنا بشین و بر در این حال هم به بحث ما مربوطه اون رویت میخونن از خود کتاب قاضی نعمان داعم الاسلام این دارمون اسلام یه چاپی شده که نسبتاً بد نیست قابل قبوله. در جلد اول در همون کتاب تهارت در سفیل 126 این اینطور داره و ان علی صلی الله علیه و آله از قال هر کردم من به ذهنم میاد این از همون کتاب سنن چون سن الان عبارتی به کتاب علیه خوندی دو تا کتاب رو با هم وقت مقایسه بکنیم اون کتاب علی که اونجایم رو باید خوندیم مال همون کتابیست که در اختیار همه نبوده این ظاهرن همون کتابی بوده که گاهی به ابو رافع نسبت داده شده و ان علیه, علیه السلام اندهو قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا یونتفق من المیتت به احابن ولا عظمن ولا عصر البته در این روایت کلمه اعظم آمده توی بعضی از متون اهل سنت هم فکر میکنم آمده کلمه عضم. در معروف متون اعظم نیامده استخان در متون مشهور نیامده لا یونتف آمند میتته به احابه اهاب هم پوسته پوستیم در ولا عصب حالا این عصب چیه؟ ظاهرش عصب اون عصبی است که در داخل بدن اما شای چی شاید چیز دیگه هم باشه، های عصبی استخوان باشه. چه الا یالهن در این کتاب آمده ولا عقل. ان خواهد آمد که عقل یعنی اون چیزهایی که به اصطلاح حوزه حیات اینا اشکال نداره، می‌دونی. فلم ما کان من الغد شماهو. شما ثم ابو. شما می‌فرماید اینکه پرداشته شد با امام در با رسولت هم فعلا نحنو به سخلتن سخل بچه گوسند رو میدهد یه خصوص بچه بزرگ میدهد الان عربای فعیلی هم بزغاله بچهی بزرگی هم سخل مطروح حتی نعلط طریق افتاده بود فقال علیه السلام ما کانه علا اهل حالی قریه ما کانه علا اهل حالی قریه نه حالی شاد این سخله لو او به احابها کاش که اینا میامدن از این پوست این حیوان استفاده دید آله قل تیا رسول الله این قولو که بل لای انتفع من المیتده به احابه چطور شد شما دیگه سایینه که لای انتفع حالا میفرماین که این روشن شد هدف از این حدیث چیه این همون بحث معروف اهل سنت که شون دوتا حدیث رو کردن اهل سنت لا یُن تَفَاؤُمُ النَّمِتَةِ به بِإِهَابِ بَلَا أَخَر از یک طرف اهل سنت رو نقل کردن از یک طرف اون حدیث شات متروحه که در ما ما کان علی اهل حال و خود اهل سنت هم صلاحاً خوندیم گزارش در جمع بین این دو تا حدیث بحث‌های زیاد دارن اده شد مثل احمد بن همبر نقد فهمیده بودن یعنی اولا هم پیغمبر اجازه داد به جلده میته در آخره هم فهمن لا ینتفه آمن المیتته به احاب ملاعصن چرا؟ چون اونها روایتی رو از شخص نام عبدالله ابن اوکین با عینه عبدالله ابن اوکین نرمی که پیغمبر اکرم قبل از وفادشون به یکی دو ماه نامه نوشتن به همین اشیره ایشون که لا ینتفه آمن المیتته میتته به احاب ملاعصن و که اهل سنت دارن ادعای اونو قبول نکردن لذا نقش هم اول نیست این روایت یک نحو دیگری جمع میکنه اولا در این روایت داره که این مسئله لا منتف اعن المذبه ها قبل از اون مسئله بوده چون اصلا یه پیغمبر اول اینجور فرستادن روز بعد دیدیم پیغمبر گفتن ما کنه الا اهل ها یعنی یاد فرهمید اون کهلان در کلمات اهل سنت هست قصه عکسه اول پیغمبر ما قصه شات مطوحه موسی دیگه در یابون افتاده بود اول اون فرمودن اواخر حیات مولا در ما مثلا محرم یا بعد از حجۃ نامه ای به که از اشاعر نمیشتن در اون نوشتهن لا انتفهم ند میفته به اهاب بن ببینید سر اینکه مثلا اهل سنت یا حدیثی رو یا حدیث شناس ها میادن همین میگوشن مثل این در این کتاب علی قصه برعس اومده اول لا ینتفع آمده بعد قصه شاتم از روها آمده در اصلی الان در کتاب های اونها به عکس اول قصه شاتم مسعود هست بعد لا ینتفع حالا و بعدم باید چیکار بکنیم امیرالمومنین طبق این نقل جمع کردن القیرا رسول الله فاین فا قول او که امس امنن به امر بله لا ینتها مانند میثره به احاب قال ینتفع امنها بالله الذي لا ینسخ این هم یک جمعه دیگه مشهوره بین اهل سنت که اونجا جمع کردن گفتن مراد از اون میته مراد از احاب که ال... یالیت های انت انتفه اونه بها مراد این است که اون رو دباقی بکنه استفاده بکنه نادری از اهل سنت گفتن دباقی هم نمیخواد اصلا پوست میتر میشه استفاده بکنه مثل زهری اونها این ها گفته شد در جای توجیه دیگری امام ف پیغمبر گوسفند مراد من از احاب این گفته رو در لغت عرب اون بخشی از پوست حیوانه که به بدن اون نچسبه یعنی پشم حیوان ای چی میگیرن پشماشو میچینن قال اللهاق الذي لا يلفق قال ينفع منها الذي لا يلفق اونی که به پوستش نچسبیده نه, نه خود پوست پشت میشه بچینه از او استفاده بکنیم پس اینم یک توجیح البته از کلم این نهر توجیح و این نهر روایت الان ما در غیر از این کتاب دائم جایی نداریم اصلا اولا اون مرد مقدم از زمانه ثانیه توجیح بشه به لهاف لحاف هم داره تو بعدش احاب هم داره الان یاره من به نظرم میاد این از همون کتاب قضایه و سنن و احکامه و این هم جزب است که دلالت میکنه لا یجوز انتفاع بالمیتت عبده هم بعد که کتاب خود جناب آقای چیز مراجعه کردیم کتاب خود دائم دیدن در حامشش این طور داره بله در سخل بعد داره که بله از تربیر دارم لا یل سخشی انطاهر به شیع و اهدوهما رتبون فتنالو نجاتتون بعد این عبارت من قضايا امير المؤمنين در همش كتاب داريم من قضايا امير المؤمنين في مجالس السياد راحتان و قبلا صلى الله عليه و آله و ان شوhte ثمن الميته و ثمن الكرد و مهر البغي و رشوت اله و عذر الكاهن فخالدام این عبارت به قضای یا امیر معلوم میشه که همون حد که من درسته حالا بین این دوتا مطم به لحاظ ادبی، به لحاظ تعبیری میتونیم مقارنه بفرمید این مطمی که در اون رواد با مطمی که در این باید. خب این یک بحث راجع به این که الان فرض کردم این روایت جز است که در باید اجزاء مبانعه از حی بحث کرده بس چربی گوستان دمبه گوشت که بزرگ میشه میبارن ما در این باره غیر از این هم داریم رواست دوم این باب هم همینه ان حسین بن محمد استاد مرحوم کلینی و از بزرگان طرفه اما معلم محمد بسری ایشان نسبتا رواست زیاده اما توصیق نشده توصیق واضحی درباره ایشان نرسیده حتی گفته شده که اجاز بولات هم بوده در آخر عمرش و مرحوم و استاد قدس الله نفسه و نفس من توصیه نمی کردم. بعدها برگشتن به خاطر وجود ایشان در کامل زیارت توصیرش کردم. اخیرا هم که یک چهار سال قبل از فوتشون نامه دادم و توصیقات کامل زیارات رو فقط در حد مشایخش قبول کردن این آقا رو هم یه از توصیح انداختن یکی از کسانی که روایتش از اعتبار خارج شد همین معلم محمده چون اگر توصیقی داشته باشه به تحبیل ایشان همون کتاب کامل زیاده که ایشان اخیره از اون که توصیقات او رفیت کن حسن ابن علی من معلم محمد از حسن ابن علی وشا زیاد نهم احتمال احتمالم داره همون وشا باشه که از اجلال تارف قال آل قلتو لعب حسن قال سهل تا عبب الحسن السلام اگر وشا باشه احتمال داره که موسا جون هم باشه احتمال رضا بیشتر رضا باشه. قول سو تو انترفادق این اهل الجبل جبل در اصطلاح جغرافیای اون روز همین دایره و محدوده کوه زاغروس رشته کوه زاغروس که الان ما بین قسمت غربی ایران و عراق فاصله شده این اهل جبل به منطقه جبل در اصطلاحشون که شما جغرافیای قدیم نگاه بفرمایید این منطقه رو میگفتن چه شهرهایی که در دامنه شرقی بودن مثل خود کوه ما قوم و و آبه و اسفهان و اینا بلاد جبل حساب میکردن این منطقه در جبل میگه چه شهرهایی که در نامنه بودن مثل همدان و بعد خود عراق و قصه شیرین و اینا هلوان اینا رو یه نهل جبل مراد از جبل اون نسمت. خب الان شو همینطور اینا مناطق سرسبز و مناطقه است که مثلا علف های خوب زیاد داره هواشون خوبه تسقل و اندهان علیات الغنم غنن فیقت اونها. قاله یہ حرامون این یه حرام مال قرض نیست با اون بر نگرده یعنی استعمال نمیشه کنه حرم علیکم میشه یعنی میته تو حرامون میته کون چوب سدا ها آیا ما با او برای چراغ قلب روشن چراغ استفاده کنیم اینم سوالی بود حالا ان بعد از می‌کنم خود سنیان دارن که مثلا اگر یک از به اون د بگووسند و کندن باش چراغ روشن نکنه. قال هم تع نهو یا سی و شغل و هو حرامون نمیدونی که به دست میرسه به لباس او و حرام خب تنجسه دست که دل بر حتشان تنجیس لباس. لذا میگن از خود این و حرامون مراد معلوم میشه که استعمال اینکه خودش بیننفسسه حرام باشه. به هر حال این روایت الان من حالا بعد ان شاء الله باز روایات دیگه هم شروع می اونجا توضیحات بیشتری هست. از جمله روایاتی که باز این که شدید یعنی این که خوندیم ظاهرش که اصلا انفعا به نه جایز نیست. انا محمد ابن یحیی که مشهور است ابن احمد ابن محمد ابن علی ابن الحکم انا علی ابن ابی حمزه ابن ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام انه هو قال یا الیات الغنم توق و هی احیا قال علیه السلام انها می میتتون این در حکم میت است و فرقی با میت نداره ان شاء الله تعالی من بعد از خواهم کرد که اینا خود اهل سنت هم روایات رو توضیح بیشترش ان بعد از من فعلا روایتش رو بخونیم از جمله روایات محمد بن ادریس در آخر سرائر به نقل از کتاب جامع بزنتی اصلا مرحوم احمد ابن محمد ابن عبی نصف و از بزرگان و اجلال اصحاب و دو تا کتابش هم کتاب داری ایشان دو کتاب نوادر و جامعه ایشان از کتاب های معروفه اون وقت در کتاب مرحوم ابن ادریس در آخرش یه بخشی داره که معروفه به مستفرفات سرائر در این بخش ایشان اده از ربایت از کتاب او ارده حتی از کتاب شیخ صدوق مسته من داره این استثرافش هم یعنی روایات تعریف روایات قشنگ، گلچین مثلا و عبده از کتب ذکر کرده البته بعدها الان بین علمای ما بحث سنگینی هست در اینکه آیا این مستطرفات قابل قبول هستن یا نه چرا؟ چونشون ایشون سندی بر اونها ذکر نکرده جزا عبده اونها رو مرسل بود عبده هم قائل هستن چون مرحوم ابن ادریس از کسانی که قاله به حجت خبر نیست مگر که خبری مفید علم باشه پس میگن ایشون راحتی از این کتاب خانه افرادتان علم برش پیدا شده دیگه پس اینا حجت هم. این دو رنگ رأی ثبت تفصیل قائل مثل مرحوم استاد چون درباره کتاب نوادر مصنفی تعلیف محمد ابن علی ابن محبوب خود ابن ادریس این کتاب به خط شیخ ابی جعفر توسی پیشه دنه مرحوم شیخ توسی قدس الله نفسه جد مادری ابن ادریسه ایشان ادعا میکنه که همون ای که مرحوم شیخ توسی سهرن منون وقتی از توس از خراسان آندم برداد بعضی از کتاب ها رو خودشون استنساخ کردن اونجور نمی نواد رو موسند به خط خودشون استنساخ خودشونه میگه همون نسخه ای که مرحوم جد ما شیخ توسی نوشه شیخ عبی جفر همون نسخه پیش منم هست ابن ادریس لذا مرحوم استاد بیشتر عقیدشون بی این بود که خصوص اون چی که از کتاب نوادر مصنفی نهار میکنه حجیت بقیهش دیگه حجیت نداره. این یک بحث بحثی رو که ما مطرح کردیم حجیت تنها نبود بحثی بود که اصلا ابن ادریس خودش حدیثشناس هست نسخ هست کتاب شناس هست تونستی درست نحق بکنی یا نه کار نداریم بینیم کار سند داریم بعضی عبارات ایشان قصور ایشان رو میرسونه. رسونه منجوریشون یک مقداری استطراف کردن در از کتاب عبادم تقلیف نمیشن منذاره که مصطف من کتاب عبادم تقلیف صاحب باقر و صادر علیه السلام که بازیشون ایم. وقتی اون روایاتی که نقل میکنه بعضی ها با دو واسته از امام رضا نقل میکنه با دو واسته خب این نشون میده که مرحوم ابن ادریس به لوازم کار ملتفت نیست دیگه خیلی عجیبه کسی که صاحب الباغره و صادقه از شاگذار امام باغر و صادقه اصلا معقول با دو واسته از امام رضا نقل میکنه خصوصا که مرحوم قبانه به تاریخ تاریخ وفاتش روشنه سال 142 هجری یعنی دقیقا بنابرای مشهور 8 سال یا 10 سال بخشید 6 سال یا 8 سال وفاتی ایشان قبل از تولد حضر قلوبان اصلا قبل از تولد حضر به 6 سال ایشان فوت کرده یه چطور محبول از ایشان با دو باسته خب این هست سال در کتاب سرائل الان بود و غیر داره. من جمله در سرائر ابن ادریس که آمده از کتاب جامع البزنطی که کی، یکی همین رو باید استدراک کرده استطراف کرده و از نخواه من جمله از موارد گفته مصرفرفنا این کتاب به استدار همین آیه هران اسم بردیم بزنطی جامعه صاحب است اون حدود همون چاپ قدیم بیش از نصف صفحه سهل تو و سهل این سوال و جواب به اینه در کتاب علی ابن جعفر هست توی اسناش هم یک جا داره قال علی و سألتو اینه علی ابن جعفر اینه که که ایشان به عنوان جامعه بزنفی نهال کرده به اینه الفاظ در کتاب بزنفیه منذرم در کتاب که الان از کرد علی ابن جعفر اینه سوال و جواب خب ممکن است به خب شاید مرحوم بزنطی که تعالیب یع profesر نهم کرد یمیکه الان در کتبی که ما داریم الان در مجموعه کتبی که ما داریم طراخ نسبتا فراوانی به علی ویبن جعفر نسبتا نخیلی در این طراخی که ما به مرحوم علی ویبن جعفر داریم یک دانه نداریم که بزنتی Изشان نهم کردیم این طراخی که ما الان از مرحوم علی جعفر داریم حتی در یک مورد هم نداریم که بزندگیشن بهم کرد و لذا به نظر ما میاد که اینجا هم باز نرزیس اشتباه کرده در لغت عربی اون که ما میگیم مجموعه میگن جامع یعنی یک کتاب بوزه پشت رو کتاب اون جامع اون ایشون خیال کرده جامع جامع بزندگیس احتمال داریم ول که منشه اشتباهه ما دونیم اون کتاب یک مجموعه ای بوده مثلا یه که از کتاب کتاب عدین و بوده نقدر میکنه ایشون برداشتن مثلا اون یک قسمت رو بردن. نه همه این قسمت رو استطراف کردن یه قسمتی که با قول خودشون خوبه نقل کردن لطفا انصاف قضیه اینه که الان اون چی که در کتابه و این ربایت هم که الان اده از آن رو نوشتن که سیهه نون حضرت رضا فرمودن علینا القام والعصور و علیکم و اونم مسترش همین ها یه نیست اشتباه نشه اینه که در ادیه از کتب تعبیر شده به صحیحه وزندی همین روایت من داشت به صحیحه وزندی صحیحه وزندی در کتاب ها دیگه اسم هم خدای مراجعه راجعه این اول مبنی بر این که کلام ابن ادریس رو به همون ظاهرش عقد کردن که از کتاب جامعه وزند قبول کردند که طریق ابن ادریس تا این جامعه بزندی صحیحه حالا یا رو همون مبنی من گفتن که چون ابن ادریس قالب حجیت خبر با حصول علم هستن اصلا میگیم علم برشون یا قائل هم بین که اصلا کتب مشهور سند نمیخواد جامعه بزندی جزا کتب مشهور از اینا سند نمیخواد پس اینا صحیح یا قائل هستن به اون نکته که ما اسم ابن ادریس رو در بعضی از اجازات داریم مثل اجازه علامه پس به دو پسر ابن زهره،, لبنی زهره در اون اجازه علامه رحمه الله من جمله از طروبش به شیخ توسی توش ابن است. پس بگیم علامه به ابن ادریس طریق داره ابن ادریس به شیخ توسی طریق داره شیخ توسی به کتاب بزندی طریق داره پس این طریق طریق میشه روشن شده؟ راه تفیه حدیث یکی از این سراحه یعنی بیهوت تمام کتب جزء مشکنی دیگه بودیم تمام کتاب منجونی این مثلا خوب این راه هم چه دیگه فکر میکنم اونایی که مونده در تشریح میارن که ما این راه ها رو قبول نداریم اصولا ما الان اشکالی که ابن الرویس کتاب نشناخته کتاب رو مشکل داره این حرفا مرحله بعدی کاره اصلا این کتاب جامعه بزنکی نیست این کتاب دیگریه ابن اريز صاحب مهلاه کتاب رو نه. مثلا کتاب ابوانم تقلب. اون کتاب مال ابوانم تقلب نیست. ما اول می‌دونیم اون کتاب مال ابوانم تقلب. از قاصین مثلا محمد جواری نگرفت. از ابوان سریم ممکن نیست قاصین محمد جواری نگرفت. احتمال من احتمال دادم به ما یکی از روابط اجلاس داریم و نام ابوانم محمد بجلی. یشون از مزورگان. شاید یک نتایج کتاب ابوانم محمد. توی اولش ابوان بوده. یشون به ابوانم تقلب. قرکاشی بعوان ابن عثمان که موضوع کینبر از امام صادقه عمرو 12 بود و بعوان منتقل شده که 6 سال قبل از فوت امام صادق فوت کرده الان کیف ماکان ما مشکلی که الان در اینجا داریم اول اون راها که به درد کار نمیخوره و مشکل از بله از اون راها از همش بهتر شهرت بله اگر واقعا ثابت بشه این کتاب کتاب جامع بزنتی حتا خوبی شهرت کتاب تصقن عن طریق ای. باست لیکن چون ابن ادریس وارد نیست در کتاب شناسی واضح از عبارت ایشان ایشان ظاهرن اینجا هم اشتباه کرده و اون چه که ایشان به اسم کتاب جامعه بزنتی نهال کرده احتمالاً ارز کردم یک کتاب بوده احتمال میدم یقین نداریم ما چون از ها دار کتاب جامعه مثلا از اون همشون که جامعه مال, بزنطی مال بزنطیه خیال کمال بزنطیه همون چیزی که در اول این کتاب آمده همون چیزی که در اول مصنف مرحوم ابنیس، ابن ادونه آمده او اون عبارات کتاب علی بن جعفر. مثلا بعضی‌ها در بسنتین آورده. اینی که ایده از علمای ما مثلا نوشتن این حدیث صحیحه، بعضی‌ها نوشتن به طریق علی بن جعفر صحیحه، بعضی‌ها نوشتن به طریق ابن ادریس صحیحه. اینا با یک مرزدی روشن شه. البته این روایت غیر از همین بقوله آیان جامعه بزرگی که الان شرح حالش براتون arz کرده در کتاب همیری هم هست و رواه الهمیری فی قرب الاسناد انا عبدالله ابن الحسن ان جدی علی ابن جعفر ان اخی پس حالمش این روا در دو جا هست یکی در قرب الاسناد که از کتاب علی بن یکی هم با عنوان کتاب جامعه بزرگی در آخر سراغ به نظر ما میاد که هر دو یکیه اون کتاب علی ابن جعفره اشتباه شده. این راجع به این راجعه اون وقت راجعه به سند همیری سابقا هم اشاراتی کردی این از همون اول هم محل اشکال بوده که چون در سند عبدالله هم حسن هست میان توصیق نشده البته این مطلب من اشاره میکنم تفصیلش این شد در جای دیگه از کردیم علی ابن جعفر به کتابی الله که و عنوان سوال و جواب با برادرشون حضرت موسیبن جعفر برای اصل کتاب مال کی بوده؟ احتمال مال برگر دیگر ایشان بوده سوال جواب با امام صادق بوده هم احتمال تا دیگر من نمیخوام نمیخواب باردون احتمال بشه الان اونی که ما داریم این کتاب مال مرحوم علیان جعفر سوال و جواب اون وقت این کتاب رو ادیه از بزرگان ما نقل کرده معروف از مسال هم جفر. و از همون اوائل بوده. شونا علی بن جعفر اوائل قرن سوم 223ه ق وفاتش و این کتاب از اوائل قرن چهارم بلکه قبلش اواخر قرن سوم اوائل قرن چهارم نقل شده مثلا از کسانی که قبل از قرن چهارم نقل کردن خود همیری است همیری این کتاب رو با یک واسطه از علی بن جعفر نقل کرده اون واسطه عبد الله بن حسن این عبدالله ابن حسن نداره روزا مرحوم استاد هر جس روایتیشون میاد ود میکنه لیکن مثلا این ممکنه شون بله به طریق عبدالله ابن حسن این روایت ضعیفه لکن این روایت فرصید به اون طریق بزنتی صحیحه که جا آش گفته شد حالا عبدالله ابن حسن ایشان نقی علی ابن جعفر یعنی اسم کامل ایشان اینه عبدالله ابن حسن علی ابن جعفر من اخیرا که کتاب تاریخ قوم رو نگاه میکردم، از عبارت ایشان بایدش که این عبدالله عبدالله آمده قم ساکن شده دید. و به خاطر نصفاتشون به علی ابن جعفر به اینها سادات علوی می گفتن. اصلا اینها در قوم محروف به سادات علوی و خود عبدالله اینه من نمی دونستم تا آلام نگفتن در بحث های دیدم معلوم شد که این بزرگان قوم که از کتاب علی ابن جعفر من مکن این رسا عبدالله ابن حسن ایشان قم آمده عبدالله ابن حسن قم آمده و کتاب جدش علی بن جعفر رو قم اوورده و در قم پخش کرده تقدر کردی؟ یکی از روات اون کتاب مرحوم همیریست که این اواخل قرن سبومه یکی از کسانی که از این کتاب علی بن جعفر از این نسخیت خیلی کم نقل کرده نیست. این کتاب علی بن جرفت بین اصحاب جا افتاده کتاب مقبولی بوده و طرق متعدد داشته و طبق این طرق متعدد متونش هم فرق میکنه یعنی متن کتاب کم و زیاد داره بیشتر متن که داریم 400 خورده حدیث و کمتر از 200 هم داریم 200 خورده حدیث هم داریم دیگه توضیحاتش جای دیگه و بهترین نسخه این کتاب در حقیقا نسخه بوده که مرحوم امرکی ابن علی بوفکی نیشابوری ظاهرن ایشون رفته خودش مدینه از ایشان شنیده و یکی دیگه هم موسفن قاسب بچالی این دوتا بهترین نسخه های این کتابه. و این دو نسخه هم در اختیار کلینی بوده هم در اختیار صدوق بوده هم در اختیار شیخ تونسی یه نسخه دیگه هم در اختیار آران و قومی ها بوده که اون نسخه عبدالله هم نوه ایشان آورده و این هبیری همیری هم کامل نقر کرده یه نسخه دیگری هم احتمالا در اختیار زیدی ها بوده که بعدها این نسخه به مصر هم رفته چون صاحب دائمه الاسلام از این نسخه نقل میکنه صاحب دائمه الاسلام لیکن اون نسخه دست زیدی ها بوده همین نسخه بعدها در اختیار مرحوم مجلسی قرار گرفته در این چاپ جلید بهاد جلد ده مرحوم مجلسی میگه من این کتاب رو یک جا میارم 400 خورده حدیث داره اون ظاهرا از سادات زیدی یعنی سادات های از سجاد زیدی باشن لیکن او حتی در نسخه مزیزی خوب دقت بکنه. اون کتاب این طور بوده ان علی بن جعفر ان محمد ابن جعفر قال سأل تا عبی اشتباه نشو من در بخش دعائم این توضیح رو دادم در کتاب مجلسی هم فعلا توش سلط عبی داره اینه که بعضی از محاصلین تصور کردن مثلا نستجور از یعنی جعفر دروق بفته کتاب مال اونیست مال برادرش محمد ابن جعفره محمد بن جعفر از پسران امام صادقه که در وقت وفادرزه اونش بزرگ بوده علی اون جعفر خیلی بچه بوده خوشیک بوده و این محمد بن جعفر در میرات اهل سنت از ما شیعه ها بیشتر شهرت داره و چون فوق العاده زیبا بوده جزء پسران بسیار زیبای ازاده صادق بوده معروف بوده به محمد دیباج دیباج اینه محمد نجفری دیباج طبق این تصور این روایت رو این سوال و جواب رو او از امام صادق کرده خوب دقت کردید طبق نوشته های ما این سوال و جواب ها از علی بن جعفر از برادرش موسی بن میگم بعضی از موسی در این کتابی نام معرفت الحدیث داره اصرار کرده کی علی بن دوران سالگی جهادان دروغو بوده کذاب بوده جهال بوده چی بوده فرصت طلب بوده بازیگر بوده خیلی الفاظ زشتی رو در حق ایشان نسبت های زشت زکاده من الانم نار کدم تجارت میشه و این کتاب مال برادرش محمد بن جعفر بوده از پدرش بود امام صادق ایشون به خودش نسبت داده که من این سوال جا از برزر مستدون جعفر که و از و و عرض کردیم اون نسخه صحت نزاره خلل تو اون نسخه زیاد حالا دیگه جاش اینجا نیست الانی این که افماکان اون چه که الان ما تو این روایت داریم این روایت تو کتاب علی ابن جعفر ثابته در همین نسخه همیاری اما در کتاب جامعه بزنتی ثابت نیست اون روایت اینه سر توان رجل یکون لغالغنم یک تا من علیاتا و یه احیا. ایس لها ان یونتفه اعلومت اب... قام نم یو ریبها و یسر ولا یکلها ولا يبيعها نه خوردن و نه برک الله